ارائه شده توسط وبسایت سایت سنت دانلود الحمدلله الحمدلله الذی وحده و سلات و سلام علی من لا نبی بعده اما بعد شکر و سپاس ایزد منان که به من و شما همچنین فرصتی رو اینایت فرمودند بخصوص در این شب بسیار میمون و مبارک شب جمعه که پیرامون سیره حضرت رسول صلی الله علیه و سلام گرد هم و محفل و بزمی به این زیبایی رو تدارک ببینیم و از آن بهره ببریم از بس که محفل ما پر از نور و امید و است که من میدانم قلبهای شما رو چهره های شما و اشتیاق شما که لحظه شماری می کنید ها رو به سختی پشت سر می گذرانید تا آنچه که در دل دارید و اینجا تماشا بکنید سی به صحبت و سخرانی نیست فقط نکاتی پیرامون این جلسه و این حمایش اینکه در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت بشه خود به خود بدون هیچ حاشیه‌ای بدون هیچ تزییناتی تاثیرات بسزا و مفیدی بر روح و روان انسان قرار میده هر اندازه مطالعه بکنی بررسی بکنی رجال دین رو رجال سیاسی رو انبیای الهی را قهرمانان، فاتحان، نام نامآوران و سیاست مداران برتر دنیا، اقتصاددانان برتر دنیا نمونه های برتر دنیا را بررسی بکنید هرگز هرگز چهره ای را موفقتر کاملتر محبوبتر، کار آمدتر مؤثرتر از محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم در تاریخ بشریت مشاهده نمی‌کنید. کسی که در تمام ابعاد، در تمام ابعاد که الان در ذهن میآید و یا اینکه بعدها در جامعه و دنیای ما به وجود میآیند، کامل بودند مدیر بودند مربی بودند مشاور بودند و صحبتهای اون تا به امروز تمام دانشمندان رو به حیرت انداخته تمام کاوشگران رو به حیرت انداخته هنوز در سحنان و صحبتهای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ماندند و در وادی حیرت به سر میبرند. صحبت کردن از همچنین شخصی نه توان من است و نه زبان عاجز من این توانایی را دارد و نه ادبیات و علم من مرا یاری میدهد و نه آن حس درون و آن عاطفه درونی این مجال را برای من فراهم می کند. اما اما مفتخرم که توانستیم ما به همراه علمای این شهر جوانان و کارکنان کارکنان دعوت و تبلیغ و سایرین که هم محفل و رو به اسم محمد و رسول الله صلی الله علیه و در این شهر تدارک ببینیم قبل از هر چیزی تشکر می از حضور مهمانهای گرانقدر که قبول زحمت کردند واقعا مسیر بسیار طولانی را طی کردند از دور و دراز به ویژه علمای گرانقدر و علمای نامی و مطرح اهل سنت جناب جناب مولانا بهزاد فقهی از خطیبان سخنوران و چهره های درخشنده و به نام اهل سنت ایران از علمای سربلند و نامدار خراسان زمین خراسان خوشنام و هیئت امرائشان که هر کدوم از آنها خود عالمانی نامدار و بازوانی توانمند برای اهل سنت و مردمان منطقه خود هستند جناب مفتی عبدالحمید عرب جناب مولانا مفتی دین محمد سعیدی و مولانا غلام سرور عرب که از علمای توانمند و نیروهای زبده خراسان زمین در این محفل ما حضور دارند. تشکر ویژه دارم از حضور استاد گرانقدرم کسی که الفبای علم دین را نزد ایشون فرا گرفتم یا دارم ده سال پیش جلوی ایشون زانوی تلموت زدم برای اولین بار ایشون بود اسم من را در کاغذها و اوراغ ثبتنامی مدرسه دارالقرآن سراوان ثبت کرد. جمله را که لحظه که من موقع سپنام به مولانا گفتم انشالله هم من بیاد دارم و هم جناب مولانا استاد مولانا اسحاق سفاهی مدیریت محترم دارالقرآن سراوان که واقعا قبول زحمت کردن حق این بود که من باید میرفتم حضوری ایشون رو میدیدم به این جلسه دعوت میکردم منتها بند نوازی کردن با یک تماس ساده بدون هیچ مقدمه بدون هیچ حرف اضافی وقتی که عنوان جلسه رو مطرح کردم با شوق و اشتیاق تمام قبول زحمت کردن و افتخار حضور در این جلسه معنوی رو دادند. علمایی که از زاهدان جناب مولانا ابراهیم رودینی که واقعا یکی از علمای جوان فعال و زحمتکشان هر لحظه در جلسه و هر روز در یک سمتی برای اجرای سخنرانی و برنامه های دینی به محضی که تماس گرفتم و ایشون در جریان گذاشتم بدون معتلی حضور در این برنامه رو پذیرفتن واقعا من اگر سالها ها بشینم از این بزرگواران تشکر بکنم هنوز من توان آن را ندارم که حق این بزرگواران را ادا بکنم و کسی ای که همه شما لحظه شماری میکنید اینکه پشت تریبون بیاد و چهره اون رو ببینید و مشتاقانه منتظرش هستید و من هم منتظرم کسی که ساله هاست صداش تنین در گوش و قلب جوانان ما و محافل ما استاد قاری زیا و رحمان صحت استاد تجوید و بلبل اهل سنت استاد تجوید داراللوم زاهدان که دقایق پیش با سختی و طولانی بودن مسیر خودشان رو به این محفل و بزم نورانی رساندند در این جلسه برنامه بر این است که به افرادی که تقریبا دو, دو ماه پیش ما مسابقه برگزار کردیم جناب مولانا مسابقه دلنوشته ای برای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بعد از حدت و و توهینی که در فرانسه صورت گرفت ما مسابقه مجازیر و تدارک دیدیم هر چند دوستان اندکی شرکت کردن منتها این دو اندکی که بودن شوق نشان دادن، علاقه نشان دادن، واقعا می دیدم که چند آزه تلاش کرده بودن تا اینکه اون حرف دلشون، مافز سمیر خودشون رو برای محبوب دلها سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان بکنند. در ادامه هم جوایز است به حفاظ مکتب روستای پاتکان اسم مکتب مکتب تبیون الفرقان روستای پتکان که چند سال بیش نیست شروع به فعالیت کرده فکر کنم سه سال بیشتر نیست که الحمدلله دو تا حافظ تحویل دادن که مشورشو در این جلسه از این بزرگواران حفاظ گرامی تقدیر و تشکر بشه اما یه نکته جالبی هست جناب مولانا صفاهی مولانا فقی که این بزرگواران این حفاظ، چنان قرآن رو حفظ کردن، الان آماده هستن، شما از صفحات از اینا امتحان بگیرید ابتدای صفحه رو بخونید، صفحه اسم صفحه رو بگیرید، صفحه 55، این کل اون صفحه رو برای شما میخونه یا اگر اسم کلمه از اون صفحه رو اسم ببرید، اون میدونه این کلمه مال کدوم صفحه است اینها تربیت شده های همین روستاهای های هستند. هستن، استعداده های درخشان، که ما خواستیم در این جلسه تقدیر و تشکری بشن که تشویقی بشه برای همه این حضار و سرورانی گرامی و در زمین من از می میکنم فراموش کردم که تقدیر و تشکر بکنم و خیر مقدم عرض بکنم خدمت استادم استاد مولانا عبدالسطار حسین بر استاد حدیث و از اساتید برجسته اینولولوم گشت مترجم محقق و نویسنده چیر دست که صاحب تعلیفات بیشماری هستند که قبول زحمت کردن و در این محفل نورانی ما با حیط حضور دارند که تقاضا کردیم هر چند چند دقیقه مختصر بیان پشت تریبون و شما چهره نازین استاد گرامی رو ببینید و با ایشون هم آشنا بشید و سخنان این بزرگ، بزرگوار رو گوش کنید من از تمام دوستانی که در این برنامه ما رو یاری کردن علمایی که حضور پیدا کردن از اطراف فنوش روستاها از ایران شهر ما در این جلسه عالم داریم علمایی از ایران شهر اومدن از بمپور اومدن از اطراف فنوش در این جلسه حضور دارن واقعا من رو بسیار خوشحال می و آخرین سخنم این است که تشکر هزاران هزاران تشکر نصار علمای شهر می کنم که به بنده ناچیزی بی چون من این مجال رو دادن وقتی مشوره کردم و این به جل... در مورد این جلسه تمام حمایت و توانشون رو نصار من کردند پشت من رو به گرمی نگه داشتن پشتوانه من بودن و دلگرمی من بودن از ابتدا تا الان الله سبحانه به این علمای عزیز جزای خیر بفرماید و اون عزیزانی که مالی جانی هر لحظه در این جلسه ما رو یاری کردن از لحاظ ماشین، امکانات، وسایل من تشکر می مقدردانی. بیشتر از این مسده وقت شما نمی که به برنامه های خودمون برسیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات.